وصیتی شهید روزه که اجل جانی بی من تیر و نیشان بست عنقای نفس از قفسی نشری ها شد پروانه عمرم دیگران بال و پرش سوخ ترحی سفر از دیری فناسوی بقاشو ترحی سفر از دیری فناسوی بقاشو کردند و مراجانی بی مقبول ونا روانه کردند دو مراجانی بی مقبور و روانه بیش گفت اگر سلبی عدو سینه ای چاکم در پیچ خمی معرکه و در دیلی سنگار هر قطره ای کی که بی زیمن اونجا روید بزمین لاله ایلو اولو اوسن او رویت به زمین لاله لولو حسن او بلبل بل بل لانه و آوازی ترانه بل بل بکند لانه و آوازی ترانه تابوتی مرا در دیل صحرا بگذارد تا مردمی آزاده بیاید و جنازه گر بر دی آمد بنام آزمز در اشار، گویت کی نزدیک مشار نسی جازا، کی نزدیک مشار نسی جازا، زیرا کی غلام من همه مکرند به هانا، زیرا کی غلامان من همه مکرند به هانا زیرا کی غلامان من همه مکرند و هانا سد پارتن او جامعی من هیچ مشوید پرخون به سپارید بکاشان خاکم بر سقفی همان مر قدی من خاک بیرزد تا دیده خورشید خرشید تنی پاکم تا دیده خورشید خرشید تنی پاکم خانه زیایاتی سفر بر سری لانا خانه زیایاتی سفر بر سری لانا بر لوح سری تربت من باعث نگاره با خطی درشتی تی رو باین با دای هر کس که در این راه رود با تنی پرخون از قافله ای بدر ز یاران حسین است از قافله ای بدر ز یاران حسین است مانت ز گم شده این فرد نشانه مانت ز گم شده این فرد نشانه تو چهره نگردد به وطن عدل الهی به هیچ کس قول تعهد نسفره تو مرحله ی تصفیه و آره به زمین اصلح ای خود مگذار آره به زمین اصلح ای خود مگذار از خون کمونیسم کنه جوی روانا از خون کمونیسم کنه جوی روانا ای همسفران سفاران از ره اخلاص خدا را رزه در این پیکری کری گیل عدالت بر نقش قدم های سلف پا بگذارید نقش کی بود مظهر تصویر خلافت نقش کی بواد مظهر تصویر خلافت حاکم شود اینی خداوند یگانه Hokim shad o jeźni chudoban diagona